مصل دوم، میل، نقطه شروع همه دستاوردها. اولین گام به سمت سروت وقتی ادوین سی سی سال پیش در منطقی اورنج نیو جرسی سوار قطار باری می شده شاید شبیه یک آواره یا خانه به دوش بوده اما افکارش مثل افکار یک شاه بود وقتی او از راهن به سمت دفتر توماس ادیسون به راه افتاد، ذهنش مشغول بود. او خود را ایستاده در حضور ادیسون می دید. صدای خود را می شنید که از آقای ادیسون می خواهد به او فرصت بدهد که دلمشغولی شدید به زندگی و میل شدید به همکاری با مختره بزرگ را تجربه کند. میل بارنز یک امید نبود، یک آرزو نبود. یک میل شدید و تپنده بود که از هر چیز دیگری فراتر می رفت. قطعی و مشخص بود وقتی او به ادیسون نزدیک شد این میل یک میل تازه نبود میل غالب بارز میلی بود که سابقه ای طولانی داشت در ابتدا وقتی میل به ذهنش خطور کرده شاید فقط یک آرزو بوده ولی وقتی بارز با آن میل در مقابل ادیسون ظاهر شد دیگر فقط یک آرزو نبود چند سال پیش، ادوین سی بانز دوباره در همان دفتر در جایی که برای اولین بار با مختره روبرو شد، ایستاد. این بار میل او محقق شده است. او حالا با ادیسون کار می کرد. رویای غالب زندگیش محقق شده بود. امروزه کسانی که بانز را می شناسند، به خاطر این افتخاری که پیدا کرده است به او حسودی می کند. آنها شادی و پیروزی او را می‌بینند بدون اینکه به خود زحمت بدهند که علت موفقیت او را بررسی کنند. بارنز موفق شد چون یک هدف معین را انتخاب کرد و تمام انرژی، اراده و تلاش خود را روی آن گذاشت. او همان روزی که از راه رسید، شریک ادیسون نشد. او راضی بود پشت پا افتاده ترین کارها را انجام دهد تا فرصت پیدا کند، تا حتی یک گام هم که شده به سوی هدف ارزشمنده خود بردارد. پنج سال گذشت تا اینکه بالاخره تغییری که او دنبال آن بود روی داد. در طول این سالها او هیچ بارقه امید و هیچ پیمانی را که مربوط به تحقق میل خود باشد از خود دریغ نکرد. او برای همه یک مهره ناچیز به حساب می آمد. جز برای خودش. اما واقعیت این بود که او از همان روزی که برای اولین بار به دفتر ادیسون رفت تا در آنجا زندگی کند، لحظه به لحظه شریک ادیسون بود. این مظهر قدرت یک میل مشخص است. بارنز به هدف خود رسید چون بیشترین چیزی که میخواستیم این بود که همکار آقای ادیسون شود. او برنامهای تنظیم کرد تا با آن به هدف برسد. اما او همه پلهای پشت سر خود را خراب کرد. او آنقدر به پای میل خود ایستاد که آن میل مشغله‌ی فکری غالب زندگیش شد و بالاخره محقق شد. وقتی او به منطقه‌ی اورنج رفت به خودش نگفت من سعی خواهم کرد ادیسون را برانگیزم تا یک کار راحت به من بدهد، بلکه گفت من ادیسون را خواهم دید و به او اطلاع خواهم داد که آمدهام تا با او کار کنم. او نگفت چند ماهی در آنجا کار می‌کنم و اگر تشویق نشدم دست از کار می‌کشم و به جای دیگری می‌روم. او گفت فرق نمی کند از کجا شروع کنم ولی قبل از اینکه کارم تمام شود شریکش خواهم شد او نه گفت چشمهایم را باز میکنم تا اگر نتوانستم جایگاهی را که میخواهم در سازمان ادیسون به دست آورم فرصتی دیگر را غنیمت بشمارم او گفت در این دنیا فقط یک چیز وجود دارد که مصمم هستم به آن برسم و آن همکاری با توماس ادیسون است من همه پلها را پشت سر خودم خراب می‌کنم و کل آینده‌ام را رو روی اینکه بتوانم به آنچه چه می خواهم برسم می‌گذارم. او هیچ راه احتمالی برای عقب نشینی برای خودش باقی نگذاشت. او مجبور بود یا ببرد یا هلاک شود. این بود داستان موفقیت بارز. در گذشته دور، جنگجوی بزرگی با وضعیتی روبرو شد که او را مجبور میکرد که تصمیمی بگیرد که موفقیت او را در میدان نبرد تضمین کند. او باید سپاهیان خود را به جنگ یک دشمن قوی میفرستاد. دشمنی که نفرات آن از نفرات او بیشتر بود. او سربازان خود را سوار قایق کرد، روانه کشور دشمن کرد. سربازان و تجهیزات را پیاده کرد سپس دستور داد ها و کشتی‌هایی که آنها را به مقصد رسانده بود بسوزانند او در خطابهای که قبل از نبرد نخست برای سربازان خود ایراد کرد گفت می‌بینید که ها و کشتی‌ها سوختند و دود شدند این یعنی اینکه تا برنده نشویم نمی‌توانیم این سواحل را ترک کنیم حال هیچ ای نداریم یا پیروز می‌شویم یا هلاک می‌شویم آنها پیروز شدند هر کسی که در کاری برنده می شود باید مایل باشد کشتیهایش را بسوزاند و همه گزینه های عقب نشینی خود را حذف کند. فقط با این کار است که فرد می تواند مطمئن باشد که آن وضعیت ذهنی را که میل شدید به پیروز شدن نامیده می شود و برای موفقیت ضروری است حفظ کند. صبح روز بعد از آتحسوزی بزرگ شیکاگو گروهی از تاجران در خیابان استیت ایستاده بودند و به دودی که از بقایای مغازه به هوا می رفت نگاه می کردن. آنها جمع شدند تا تصمیم بگیرند که سعی کنند مغازهشان را بازسازی کنند یا شیکاگو را ترک کنند و در قسمتی از کشور که رونق بیشتری دارد شروع به کار کنند تنها تصمیمی که آنها نگرفتند ترک شیکاگو بود تاجری که تصمیم گرفت در شیکاگو بماند و مغازه خود را بازسازی کند، به بقایای مغازهش اشاره کرد و گفت: بزرگترین مغازه دنیا را در همان جای قبلی مغازه‌ام خواهم ساخت، حتی اگر هزاران بار آتش بگیرد و خاکستر شود. این قضیه مربوط به 50 سال پیش می‌شود. این مغازه ساخته شد، هنوز هم هست و بنای سر به فلک کشیده‌ای است که یادآور قدرت وضعیت ذهنی به نام میل شدید است. کار راحتی که آن فرمانده ارتش انجام داد دقیقا همان کاری بود که این تاجران انجام دادند. وقتی حرکت سخت بود و آینده نامید کننده به نظر می رسید آنها خود را بالا کشیدند و به جایی رفتند که حرکت در آنجا راحت تر به نظر می رسید خوبی به این تفاوت بین فرمانده ارتش و دیگر تاجران توجه کنید چون همین تفاوت است که ادوین سی بارنز را از هزاران جوان دیگر که در سازمان ادیسون کار کردهاند متمایز می کند همین تفاوت است که همه افراد موفق را عملاً از افراد شکست خورده متمایز می کند زمانی که فرد به سنی می رسد که هدف از پول داشتن را درک می کند آرزوی آن را می کند آرزو کردن ما را به ثروت نمی رساند ولی میل به ثروت داشتن به همراه وضعیت ذهنی که فکر و ذکر فرد شود، برنامه ریزی راهها و ابزارهای دقیق برای کسب ثروت و پشتیبانی از آن برنامه ها با پشتکاری که شکست را قبول ندارد فرد را به ثروت میرساند. روشی که میل به ثروت میتواند به ماباعضای مالی آن تبدیل شود از شش گام مشخص و عملی تشکیل شده است گام نخست دقیقاً مشخص کنید که چه مقدار پول می خواهید. فقط کافی نیست بگویید پول خیلی زیادی می‌خواهم مقدار آن را دقیقاً مشخص کنید اینکه مقدار پول را دقیقاً مشخص کنید، دلیل روانشناختی دارد که در فصل بعدی توصیف خواهد شد گام دوم دقیقاً تعیین کنید که در قبال پولی که می خواهید، قصد دارید چه چیزی بدهید نمیتوان چیزی نداد ولی چیزی گرفت گام سوم، تاریخ اینکه کی که به پول مورد نظرتان برسید را دقیقا مشخص کنید. گام چهارم، برنامه مشخصی برای عملی کردن میلتان تنظیم کنید و ابتدا ببینید آیا آماده اید این برنامه را عملی کنید یا خیر. گام پنجم، یک جمله روشن و مختصر و موجز در مورد مقدار پولی که می کسب کنید، بنویسید. محدوده زمانی اقتصااب آن را مشخص کنید، تصریح کنید که میخواهید در قبال پولی که به دست میآورید چه بدهید و برنامه ای را که با آن می این پول را جمع آوری کنید به روشنی توصیف کنید. گام ششم جمله مکتوبتان را روزی دو بار با صدای بلند بخوانید. یکی شب هنگام قبل از اینکه به بستر بروید و یکی بعد از بیدار شدن از خواب در هنگام صبح. همچنان که این جمله را میخوانید خود را صاحب پول ببینید و احساس کنید و باور کنید مهم است که از دستورالعمل هایی که در این ششگام توصیف شدند پیروی کنید آنچه از اهمیت خاصی برخوردار است این است که دستورالعمل ها را در گام ششم مشاهده کنید و از آن پیروی نمایید شاید شکایت کنید که وقتی واقعا صاحب پول نیستید غیر ممکن است که خود را صاحب پول ببینید اینجاست که یک میل شدید به کمکتان خواهد آمد. اگر واقعا چنان پول را طلب میکنید که فکر و ذکرتان شده است، در اینکه خودتان را متقاعد کنید که به آن خواهید رسید، مشکلی نخواهید داشت. هدف این است که پول را بخواهید و برای دستیابی به آن چنان مصمم شوید که خودتان را متقاعد کنید که به آن دست پیدا خواهید کرد. فقط کسانی که پول باور می شوند، زیادی را کسب خواهند کرد. پول باوری یعنی اینکه ذهن چنان با میل به کسب پول اشبا شود که فرد خود را صاحب پول ببیند. ممکن است برای کسی که تازه کار است، یعنی در اصول کارآمد ذهن انسان آموزش ندیده است، این دستورالعملها غیرعملی غیر عملی به نظر آید. برای همه کسانی که از تشخیص صحت این گام ها باز میمانند دانستن اینکه اطلاعاتی که این گام ها نشان میدهند از اندرو کارنگی به دست آمده است مفید میباشد اندرو کارنگی که در ابتدا کارگر معمولی کارخانه فولاد بود ولی توانست کاری کند که این اصول ثروتی هنگفت که بیش از 100 میلیون دلار بود برای او به ارمغان بیاورند. شاید آگاهی از اینکه این, این ششگامی که در اینجا توصیه شدهاند به دقت به وسیله توماس ادیسون فقید بررسی شدهاند سود بیشتری داشته باشد ادیسونی که بر گامهایی مهر تایید زد که نه تنها برای کسب پول ضروری هستند بلکه برای رسیدن به هر هدف مشخصی لازمند این گامها کار سنگینی نمیخواهند علم نمیخواهند لازم نیست فرد برای اتخاذ آنها مسخره یا زودباور شود عملی کردن آنها مستلزم تحصیلات زیاد نیست اما کاربرد موفق این شش گام مستلزم تخیل کافی است تا فرد قادر شود ببیند و درک کند که جمع کردن پول را نمیتوان به شانس خوش اقبالی یا بخت سپرد فرد باید بداند همه ی کسانی که ثروت زیادی جمع کرده قبل از اینکه به پول برسند رویا، امید، آرزو، میل و برنامه ریزی خاصی داشتند خوب است این را بدانید که شما هرگز نمی توانید به ثروت هنگفتی برسید مگر اینکه بتوانید اشتیاق شدیدی برای کسب پول پیدا کنید و واقعا باور داشته باشید که صاحب آن خواهید شد خوب است این را نیز بدانید که هر رهبر بزرگی که از تلیه تمدن تا به حال ظهور کرده است با رویا شروع کرده است مسیحیت بزرگترین قدرت بلغوه در دنیای امروز است چون بنیانگذار آن رویاهای پرشوری داشت و این بینش و تخیل را داشت که واقعیتها را قبل از اینکه به شکل فیزیکی در به شکل ذهنی و معنوی ببیند اگر ثروت زیاد را در تخیلتان نبینید آن را هیچگاه در حساب بانکیتان نخواهید دید فرصتی که امروزه برای رویابین های عملگرها وجود دارد، هیچگاه در طول تاریخ آمریکا وجود نداشته است. رکود اقتصادی 6 ساله همه را تا حد زیادی در یک سطح نگه داشته است. قرار است یک مسابقه جدید شروع شود. قوانین مسابقه عوض شدن چون در یک یافته ای زندگی می کنیم که قطعا به نفع توده هاست. هایی که در شرایط موجود در طول رکود اقتصادی یعنی وقتی ترس باعث فلج شدن رشد و توسعه می شود فرصت اندکی برای برنده شدن دارند. یا اصلا فرصتی ندارند. ما که در این مسابقه به دنبال ثروت هستیم باید تشویق شویم که بدانیم این دنیای تغییر یافته که در آن زندگی می کنیم، ایده های جدید، راه های جدید، برای انجام کارها، رهبران جدید، اختراعات جدید، روش‌های جدید تدریس، روش‌های جدید بازاریابی، کتاب‌های جدید، ادبیات جدید، برنامه‌های رادیو و تلویزیونی جدید می‌طلبد. در پشت این همه تقاضا و طلب برای چیزهای جدید و بهتر، خصوصیتی وجود دارد که فرد باید آن را داشته باشد تا برنده شود. این خصوصیت عبارت است از قطعیت و مشخص بودن هدف. شناخت آنچه فرد می خواهد و میل شدیدی برای داشتن آن خصوصیت. رکود کسب و کار نشان دهنده مرگ یک عصر و تولد عصر بعدی است. این دنیای تغییریافته مستلزم حضور کسانی است که رویاهای عملی داشته باشند و بتوانند رویاهایشان را محقق کنند. کسانی که رویا عملی دارند همیشه الگو سازان تمدن بوده و هستند. ما که می خواهیم به دست بیاوریم باید به یاد داشته باشیم که رهبران واقعی دنیا همیشه کسانی بودند که نیروهای غیرعینی و نامرئی فرصتهای زاده نشده را مهار کردند و به صورت عملی به کار بردند و این نیروهای های فکری را به آسمان خراش، شهر، کارخانه، فرودگاه، اتومبیل و هر گونه امکاناتی که زندگی را دلپذیرتر تر می کند، تبدیل می کند. تحمل و ذهن باز از ضروریات عملی برای کسانی است که امروز رویا در سر دارند. کسانی که از ایدههای جدید میترسند قبل از اینکه شروع کنند محکوم به شکست هستند. هیچ زمانی برای پیشگامان مطلوبتر از زمان حال نبوده است. درست است دیگر مثل زمان گذشته نیست اما یک دنیای گسترده کاری، مالی و صنعتی وجود دارد که باید در قالب جدید درآید و در خطوط جدید و بهتر هدایت شود. در برنامه ریزی که برای رسیدن به ثروت می‌کنید، نگذارید هیچ کس شما را وادار کند که به کسانی که رویا پردازی می می‌کنند توهین کنید. برای اینکه در این دنیای تغییریافته به پیروزی برسید، باید روحیه پیشگامان بزرگ گذشته را پیدا کنید که روحیه های آنها همه‌ی آن چه ارزشمند بوده است را برای تمدن فراهم آورده است. روحیه‌ای که به عنوان مایه حیات کشور خودمان و فرصت شما و من برای توسعه و بازاریابی استعدادهایمان عمل می‌کند. یه فراموش نکنیم که کریستوف کولوم رویای یک دنیای ناشناخته را در ذهن پروراند عمر خود را روی چنین دنیای بندی کرد و آن دنیا را کشف کرد کوپرنیک این منجم بزرگ رویای تعدد دنیاها را در ذهن پروراند و آنها را کشف کرد بعد از اینکه او موفق شد هیچ کس او را غیر عملگران ننامید و سرزنش نکرد در عوض جهانیان او را تکریم کردند بنابراین یک بار دیگر ثابت شد. که موفقیت معذرتخواهی نمیخواهد و شکست هیچ بحانه ای را توجیه کند اگر کاری که می خواهید بکنید صحیح است و به آن باور دارید به پیش بروید و آن را انجام دهید رویایتان را تفهیم کنید و هرگز برایتان مهم نباشد که اگر با یک شکست موقت روبرو شدید دیگران چه میگویند. چون شاید دیگران ندانند که هر شکستی بذر یک موفقیت معادل را با خود به ارمغان میآورد. هنری فورد فقیر و بی سواد در رویای یک کالسکه بدون اسب بود و بدون اینکه منتظر شود تا فرصت به او رو کند با ابزارهایی که در اختیار داشت کار کرد و حالا شواهد رویای او کل کره زمین را دربر گرفته است او بیش از هر کس دیگری چرخها را به حرکت درآورده است چون از اینکه از رویاهای خود حمایت و پشتیبانی کند نترسید توماس ادیسون در رویای لامپی بود که بتواند با الکتریسیته کار کند از جایی که در آنجا ایستاده بود شروع کرد به عملی کردن رویاهای خود و با اینکه هزار بار شکست خورد آنقدر از آن رویا حمایت کرد که آن رویا را به یک واقعیت تبدیل فیزیکی کرد کسانی که رویاهای عملی دارند دست از کار نمی کشند. ویلان فروشگاه های زنجیره‌ای سیگار برگ را در ذهن پروراند رویای خود را عملی کرد و حالا فروشگاه های او در بهترین نقاط آمریکا قرار دارند لینکل رویای آزادی برای برده ها را در ذهن پرورند رویای خود را عملی کرد و آنقدر زنده ماند تا شاهد تحقق رویای خود بود که اتحاد ایالت های شمال و ایالت های جنوب بود برادران رایت رویای دستگاهی را در ذهن داشتند که بتواند در هوا پرواز کند حالا همه در سراسر سر دنیا می بینند که رویای آنها تحقق یافته است مارکونی در رویای سیستمی برای مهار کردن نیروهای هوا بود. شواهدی که نشان می‌دهد رویای او بیهوده نبود را میتوان در هر بیسیم یا رادیویی در سراسر دنیا یافت علاوه بر این رویای مارکونی حقیرترین کلبه را با اشرافیترین ملک اربابی کنار هم گذاشت مردمان تمام ملتهای کره زمین را همسایگان یکدیگر کرد به رئیس جمهور آمریکا این وسیله را داد که با همه مردم آمریکا در آن واحد سخن بگوید شاید برایتان جالب باشد که بدانید وقتی مارکونی اعلام کرد اصلی را کشف کرده که با آن میتواند پیامها را بدون سیم یا وسیله ارتباطی مستقیم ارسال کند، دوستان مارکونی او را گرفتند و برای معاینه به یک بیمارستان روان درمانی بردند. البته وضع کسانی که امروزه رویا دارند بهتر از این نیست. دنیا به کشف‌های جدید عادت کرده است. دنیا نشان داده است که تمایل دارد به کسی که رویا دارد و ایده جدیدی را به دنیا می دهد، پاداش بدهد. بزرگترین دستاورد در ابتدا و برای مدتی یک رویا بوده است. درخت بلوت در دانه بلوت می پرنده در تخم انتظار می کشد و یک فرشته بیداری در بالاترین بینش روح اوج می گیرد. رویا نحال واقعیت است. ای کسانی که رویا دارید، بیدار شوید، برخیزید و خود را نشان دهید ستاره شما در حال اوج گرفتن است رکود اقتصادی دنیا فرصتی را که منتظرش بوده فراهم آورده است این رکود به مردم فروتنی تحمل و ذهن باز داد. دنیا پر از فرصتهای فراوانی است که رویا پردازان دنیا هرگز از آن خبر ندارند میل شدید به بودن و انجام دادن نقطه شروعی است که رویاپرداز باید از آن نقطه شروع کند رویاها از بیتفاوتی، تنبلی یا فقدان بلند زاده نمی شوند دنیا دیگر به رویاپردازان نمی خندد و آنها را غیر عملی نمی نامد. اگر فکر کنید چنین می کند، سفری به تنسی بکنید و ببینید یک رئیس جمهور رویاپرداز در مهار کردن و استفاده از قدرت آبی عظیم آمریکا چه کار کرده است چند سال پیش چنین رویایی مثل دیوانگی به نظر می رسید. شما ناامید شده اید، در طول دورهی رکود اقتصادی شکست خورده اید و قلبتان جریه دار شده است. جرأت داشته باشید چون این تجربه ها شما را آب دیده کرده. آنها دارایی هایی هستند که عرضش هایی دارند. این را نیز به یاد داشته باشید که همه ی کسانی که در زندگی موفق می شوند بد شروع می کنند. و بسیاری از کوشش ها و تقله دلخراش را تجربه کردند تا بالاخره به مقصد رسیدند. نقطه عطب زندگی کسانی که موفق می شوند معمولاً یک لحظه بحرانی است که در آن لحظه با خودهای دیگرشان معرفی می شوند. جانمانیان بعد از اینکه به خاطر دیدگاههایی که در مورد دی زندانی شد و شدیداً مجازات گشت، کتاب سیر و سلوک زائر را که از عالی ترین آثار ادبیات انگلیس است نوشت او هنری بعد از اینکه با بلایا و مصیبت های عظیمی مواجه شد و در سلولی در کولومبوس اوهایو زندانی شد نبوغی را که در مغزش خفته بود کشف کرد او که به خاطر بلایه و مصیبت مجبور شد با خود دیگرش آشنا شود و از تخیلش استفاده کند خود را کشف کرد که یک نویسندگی بزرگ است نه یک خلافکار یا یک آدم مطرود بدبخت. راه های زندگی عجیب و گونه, گونه هستند و راه های که مردان و زنان گاهی مجبور می شوند قبل از کشف مغز خودشان و ظرفیت خودشان در خلق ایده های جدید متحمل همه و تنبیه و مجازات شوند. ادیسون بزرگترین مختره و دانشمند دنیا یک اپراتور آواره تلگراف بود او هزاران بار شکست خورد تا اینکه بالاخره نبغ که در مغزش خفته بود را کشف کرد. چارلز دیکنز در ابتدا روی جعبه واکس سیاه برچسب میزد. تراجدی عشق اولش در اعماق روحش نفوذ کرد و او را واقعا یکی از بزرگترین نویسندگان دنیا کرد. این تراژدی ابتدا دیوید کاپرفیلد و سپس چند اثر متوالی دیگر را خلق کرد که دنیا را برای همه کسانی که کتابهای او را میخوانند قنیتر و بهتر کرد. سرخوردگی و ناکامی در عشق معمولا این تأثیر را دارد که مردان را الکولی و زنان را زایه کنند و این بدان علت است که اکثر افراد هرگز هنر تبدیل حیجانات قوی به رویاهایی با ماهیت سازنده را یاد نمیگیرند هلن کلر اندکی پس از تولد ناشنوا، لال و نابینا شد او با اینکه مصاحب زیادی کشید ولی نام او برای همیشه در تاریخ ثبت شده است کل زندگی او مدرکی شد دال بر اینکه هیچکس تا زمانی که شکست را به عنوان یک واقعیت نپذیرفته باشد شکست نمیخورد رابرت برنز یک پسر بچه دهاتی بی سواد بود. او به مصیبت فقر مبتلا بود و علاوه بر آن یک مادام الخمر نیز شد. ولی دنیا با وجود او بهتر شد چون او جامعه شعر را به افکار زیبای خود پوشید و به این ترتیب خار را کند و به جایان گل نشاند. رابرت تی واشنگتون در بردگی زاده شد و او را نژاد و رنگ پوست عقب نگه داشت. از آنجایی که او شکیبا بود و همیشه و در همه موضوعات ذهن بازی داشت و یک رویا پرداز بود برای همیشه بر روی یک نژاد تأثیر گذاشت. بیتووین ناشنوا بود، میلتون نابینا بود ولی نام آنها تا زمانی که دنیا دنیاست زنده خواهد ماند. چون آنها رویا پرداختند و آن رویاها را به شکل فکر منظم درآوردند. قبل از اینکه به سراغ فصل بعدی بروید، آتش امید، ایمان، جرأت و تحمل را دوباره روشن کنید. اگر از این حالات ذهن و شناخت مفیدی از اصول توصیفی داشته باشید، وقتی برای آن آماده باشید، همه چیزهای دیگری که نیاز دارید برایتان فراهم خواهند شد. امرسون این سخن را با این کلمات بیان کند. هر ضربالمثلی، هر کتابی، هر مثلی که به منظور کمک یا آگاهیش به شما تعلق دارد، قطعا از مسیرهای ساده یا پیچیده به مقصد خواهد رسید هر دوستی که نه اراده فوق بلکه روح بزرگ و مهربانش در تو خانه می کند، تو را در آغوشش قفل خواهد کرد تفاوتی هست بین چیزی را آرزو کردن و آمادگی داشتن برای دریافت آن هیچکس برای چیزی آمادگی ندارد مگر اینکه باور کند میتواند آن را بدست آورد وضعیت ذهنی باید مبتنی بر باور باشد نه مبتنی بر امید یا آرزوی محض داشتن ذهن باز برای باور ضرورت دارد ذهن‌های بسته ایمان جرأت و باور را برنمی‌انگیزند به یاد داشته باشید بیشترین تلاش لازم برای این است که فقر و بدبختی و فلاکت را بپذیرید نه برای اینکه بلندپروازی کنید و فراوانی و رفاه طلب کنید یک شاعر بزرگ این حقیقت جهان را به درستی به شکل زیر بیان کرده است. با یک پنی با زندگی معامله کردم. وقتی اندوخته محقرم را شمردم، چپهنگام گدایی کردم. چون زندگی مثل یک کار فرماست، او را بخواهی به تو می دهد. ولی وقتی دست را یک بار تعیین کردی، باید کار را تحمل کنی. من برای یک دست ناچیز کار کردم ولی در کمال ناامیدی فهمیدم که هر دست که از زندگی خواسته بودم زندگی با کمال میل پرداخت کرد. میل از طبیعت زرنگ تر است. در روج این فصل دوست دارم یکی از غیرمعمولترین افرادی رو که تا به حال دیدم به شما معرفی کنم. او را برای اولین بار 24 سال پیش دیدم یعنی چند دقیقه پس از اینکه به دنیا آمد. وقتی به دنیا آمد علامت فیزیکی که گوشهایش را نشان دهد دیده نشد و وقتی به پزشک اصرار کردم که نظر بدهد او اقرار کرد که ممکن است بچه تا آخر عمر کرولال شود من نظر پزشک را به چالش کشیدم حق داشتم چه این کنم پدر بچه بودم من هم به نتیجه رسیدم و نظر دادم ولی این نظر را در نهانگاه قلبم بیان کردم از خود را جذب گرفتم که پسرم هم بشنود و هم حرف بزند طبیعت می تواند به من فرزندی بدون گوش بدهد ولی نمی مرا وادار کند که واقعیت این ابتلا را بپذیرم من در ذهن خودم می دانستم که پسرم میشنود و حرف میزند چطور مطمئن بودم راهی باید وجود داشته باشد و می دانستم که آن راه را پیدا میکنم به یاد حرفهای جاودانه ای امرسون افتادم که گفت کل روند امور و کارها در جهت آن است که به ما ایمان را یاد دهد ما فقط باید پیروی کنیم برای هر یک از ما راهنما وجود دارد و با گوش دادن معمولی کلمه صحیح را می شنویم. کلمه صحیح میل است. من بیش از هر چیز دیگری میل داشتم که پسرم کرولال نباشد. من حتی برای یک لحظه از این میل لقب نکشیدم. سالها پیش نوشته بودم. تنها محدودیت ما آنهایی هستند که در ذهن خودمان ایجاد میکنیم. برای اولین بار از خودم پرسیدم آیا این سخن درست است؟ در جلوی من و بر روی تخت نوزادی دراز کشیده بود که فاقد وسیله طبیعی شنوایی بود هرچند او شاید میتوانست در آینده بشنود و حرف بزند ولی تا آخر عمر بد شکل شده بود قطعا این محدودیتی بود که بچه‌ان را در ذهن خودش ایجاد نکرده بود چه کار می توانستم بکنم می توانستم راهی پیدا کنم که میل شدید خودم را به ذهن بچه وارد کنم و راهها و ابزارهایی پیدا کنم که صدا را بدون کمک گوش به مغز بچه برساند همین که بچه آنقدر بزرگ شود که بتواند همکاری کند، ذهن او را با چنان میل شدید به شنیدن پر می کنم که طبیعت با روش خودش آن را به یک واقعیت فیزیکی تبدیل کند. همه این تفکرات در ذهن خودم شکل گرفت ولی با هیچ کس از آن سخن نگفتم. هر روز قولی که به خودم دادم را مرور می کنم تا یک کرولال را به جای یک فرزند پسر نپذیرم. وقتی او بزرگتر شد و کم کم به چیزهای اطراف خود توجه کرد، مشاهده کردیم او اندکی توانایی شنیدن دارد. وقتی او به سن رسید که بچه ها معمولا در آن سن حرف میزنند، تلاشی نکرد که حرف بزند ولی ما با توجه به اعمالش میتوانستیم بگوییم که او میتواند صداهای خاصی را اندک بشنود. این همه آن چیزی بود که میخواستم بدانم. من متقاید شدم که اگر او میتواند حتی مقدار اندکی بشنود پس میتواند ظرفیت این توانایی را حتی بیشتر کند. سپس اتفاقی افتاد که به من امید داد. منبع این اتفاق کاملا غیرمنتظره بود. من یک جعبه موسیقی خریدم. وقتی بچه موسیقی را برای اولین بار شنید زوق کرد و آن را فوراً مال خود کرد. او بعضی از آهنگ ها مثل تا تیپراری راه زیادی هست را ترجیح می داد. یک دفعه آهنگ را چندین بار به مدت تقریبا دو ساعت گوش کرد. او همه این مدت در مقابل جعبه موسیقی نشسته و دندانهایش را بر روی لبه محفظه آن گذاشته بود. اهمیت این عادت خود اصلاحی او تا سالها بعد برای ما روشن نشد آن زمان چیزی از اصل هدایت استخوان صدا نشنیده بودیم. اندکی بعد از اینکه او جعبه‌ی موسیقی را از آن خود کرد، من متوجه شدم که وقتی با لبهایی که به زایده‌ی استخوانی گوشی یا قائده‌ی مغز او چسبیدند حرف بزنم، او میتواند صدای مرا به وضوح بشنود. این کشفیات این ضرورت را به من نشان داد که میل مشتاقانه ام را به اینکه به رشد قدرت شنیداری و گفتاری پسرم کمک کنم، محقق کنم. او شانس خود را در اینکه میتواند کلمات خاصی را تلفظ کند یا خیر امتحان می‌کرد. آن چشماندز اصلا دلگرم کننده نبود ولی میلی که به وسیله ایمان حمایت شود چیزی به اسم غیرممکن را نمیشناسد. بعد از اینکه مشخص کردم که او میتواند صدای مرا به طور واضح بشنود فورا ذهن و میل او را نسبت به شنیدن و حرف زدن معطوف کردم. خیلی زود متوجه شدم بچه از داستانهایی که در زمان خواب برایش تعریف می لذت میبرد در نتیجه به کارم ادامه دادم و داستان‌هایی خلق کردم که طوری طراحی شده بودند. که خود اتکایی، تخیل و میل شدید به شنیدن و طبیعی بودن را در او رشد دهند. مخصوصاً یک داستان بود که هر بار که آن را تعریف می کردم به آن آب و تاب و رنگ و جلوه جدید و چشمگیر میدادم. این داستان برای آن تراحی شده بود که این فکر را در ذهن او بکارد که مشکل او یک مسئولیت یا تعهد نیست بلکه دارایی است که ارزش زیادی دارد. علیرغم این واقعیت که همه فلسفه‌ای که بررسی کرده بودم به روشنی نشان میداد که هر مصیبت و گرفتاری بذر یک امتیاز معادل را با خود میآورد، باید اعتراف کنم که اصلاً نمیدانستم این مشکل چطور میتوانست یک امتیاز یا نعمت شود. با این حال، آن عادت بیان داستان در هنگام خواب را برای بچم ادامه دادم به این امید که زمانی برسد که او برنامه‌ای پیدا کند که معلولیتش با آن در خدمت هدف مفیدی باشد. عقل به روشنی به ما گفت که فقدان گوش و وسیلگی شنوایی طبیعی را نمیتوان به مقدار کافی جبران کرد. میلی که با ایمان حمایت شود، عقل را کنار زد و مرا به تداوم راه برانگیخت. حالا وقتی به گذشته برمیگردم و این تجربه را تحلیل میکنم میبینم ایمان پسرم به من رابطه زیادی با نتایج فوقالعاده داشت. او هیچ چیز از آن چیزهایی را که به او میگفتم زیر سوال نبرد. من به او فهماندم که نسبت به برادر بزرگش یک امتیاز خاص دارد و این امتیاز خود را به شیوه های زیادی منعکس می کرد. به عنوان مثال معلمان در مدرسه مشاهده می کردند که او گوش ندارد و به همین خاطر توجه ای به او می کردند و با مهربانی با او برخورد می کردند. آنها همیشه چنین می کردند. مادرش به دیدار معلمان او می رفت و به آنها یادآوری می کرد که توجه اضافی لازمه را به این بچه بکنند. این را نیز به او باوران دم که وقتی سنشان قدر شود که بتواند روزنامه بفروشد یک امتیاز نسبت به برادرش خواهد داشت چون مردم پول بیشتری به او خواهند داد چون میتوانند ببینند که او با اینکه گوش ندارد ولی باهوش و سخت گوش است برادر بزرگ او تاجر روزنامه بود ما میتوانستیم ببینیم که شنوایی بچه به تدریج بهبود مییافت علاوه بر این اصلا گرایش نداشت که به خاطر مشکلی که دارد خجالت بکشد وقتی حدود 7 سال داشت اولین علامتی مبتنی بر اینکه روشی که ما در خدمت به ذهن او در پیش گرفته ایم ثمر دارد را نشان داد. او چند ماه التماس کرد که اجازه بدهیم روزنامه بفروشد ولی مادرش رضایت نداد. مادرش از این میترسید که ناشنوایی بچهش باعث شود که او در خیابان امنیت نداشته باشد. بالاخره بچه بر با روزا مسلط شد. یک روز بعد از ظهر که با خدمتکاران در خانه تنها بود از پنجره آشپزخانه بالا رفت پایین پرید و خودش دست تنها به راه افتاد. سرمایهی که 6 سنت بیشتر نبود از کفش همسایه قرض کرد، آن را روی چند روزنامه سرمایه گذاری کرد، آنها را فروخت و این سرمایه گذاری را چندین بار تا شب تکرار کرد. بعد از اینکه که حسابهای خود را تراز کرد و 6 سنتی را که قرض کرده بود پس داد، سود خالص 42 درصدی کسب کرده بود. وقتی ما آن شب به خانه رسیدیم دیدیم او در بستر خوابیده است و پول را محکم در دست خود مشت کرده است مادرش دست پسرش را باز کرد، سکه ها را برداشت و گریه کرد عجیب بود، گریه کردن برای اولین پیروزی فرزند غیر طبیعی به نظر می رسید واکنش من برعکس بود من شادمانه خندیدم چون میدانستم تلاشم در اینکه در ذهن بچه نگرش ایمان به خیشتن را جا بیاندازم موفق بوده است مادر در اولین تلاش کاری بچهش پسر بچه ناشنوایی را میدید که پا به خیابان گذاشته است و زندگیش را برای پول درآوردن به خطر انداخته است من یک مرد کوچک کاسب شجا بلند پرواز و متکی به نفس را میدیدم که اعتماد به نفس وی 100 درصد افزایش یافته چون به ابتکار خودش وارد این کار شده و برنده شده است. من از این وضع خوشحال شدم چون میدانستم این شاهدی است دال بر خصوصیت تدبیر و کاردانی که در طول زندگی با او خواهد بود. مقایه بعدی ثابت کرد که این درست بوده. وقتی برادر بزرگتر او چیزی میخواست او روی زمین دراز میکشید پاهایش را به زمین میکوبید برای آن گریه میکرد تا اینکان آن را بگیرد وقتی این پسر بچه‌ی ناشنوا چیزی میخواست راهی برای پول درآوردن برنامه‌ریزی میکرد سپس آن را برای خودش میخرید او هنوز آن برنامه را دنبال میکند پسر خود من واقعا به من یاد داده است که معلولیت‌ها را میتوان به جای پای محکمی تبدیل کرد که فرد میتواند به کمک آن به سمت هدفی ارزشمند صعود کند البته به شرطی که آنها را به عنوان مانع نپذیرد و از آنها به عنوان بهانه استفاده نکند پسر بچه‌ی ناشنوا بدون اینکه صدای معلمان و اساتید خود را مگر فریاد آنها را بشنود مراحل دبستان، دبیرستان و دانشگاه را سپری کرد او به مدرسه ناشنوایان نرفت ما به او اجازه ندادیم که زبان اشاره را یاد بگیرد ما از خود را جذب کرده بودیم که او باید زندگی طبیعی داشته باشد و با بچه های عادی معاشرت کند و هرچند این تصمیم باعث شد بحث های تندی با مقامات مدرسه داشته باشیم ولی به پای این تصمیم ایستادیم وقتی در دبیرستان بود یک وسیله الکتریکی چنوایی را امتحان کرد ولی آن برای او ارزشی نداشت به نظر ما علت آن آرزهی بود که وقتی بچه شش ساله بود دکتر گردون ویلسون از شیکاگوان را کشف کرد. او روی یک طرف سر بچه عمل جراحی را انجام داد و متوجه شد که علامتی از وسیلگی شنوایی طبیعی وجود ندارد. در آخرین هفته‌ای که پسر ناشنوای ما در دانشگاه درس می یعنی 18 سال پس از عمل جراحی اتفاقی افتاد که مهمترین نقطه ی زندگیش بود. او به مدد آنچه شانس محض به نظر می رسد صاحب یک وسیله شنوایی الکتریکی دیگر شد که به صورت آزمایشی برای او ارسال شده بود به خاطر اینکه قبلا از وسیله مشابه ها نامید شده بود در آزمایش کردن آن تعلل میکرد بالاخره این وسیله را انتخاب کرد و با دقتی کم یا زیاد آن را روی سرش گذاشت به باتری نگاه کرد و گویی به شکل مجزه آسا میل درازمدت او او به شنوایی طبیعی محقق شد او برای اولین بار در زندگی خود مثل آدم‌هایی که شنوایی معمولی دارند شنید. خداوند به شیوه های رمزامیزی حرکت حرکت میکند. معجزه او عمل کردن است. پسرم به خاطر اینکه به کمک این وسیله شنوایی با دنیای جدیدی روبرو شده بود، در پوست خود نمیگنجید. او دوید به طرف تلفن به مادرش زنگ زد و صدای او را کاملا شنید. قبلا فقط وقتی صدای آنها را شنید که از فاصله نزدیک داد میزدند. او صدای رادیو را شنید، صدای تلویزیون را شنید و برای اولین بار در زندگی خود می توانست آزادانه با دیگران گفتگو کند بدون اینکه ضرورت داشته باشد که دیگران با او بلند حرف بزنند. واقعا او صاحب یک دنیای تغییر یافته شده بود. ما از پذیرفتن خطای طبیعت امتنا کرده بودیم و با میل مسرران طبیعت را وادار کردیم که این خطا را با تنها وسیله موجود اصلاح کند. میل شروع کرده بود به سود دادن ولی پیروزی هنوز کامل نبود. پسر هنوز راه مشخص و عملی برای تبدیل معلولیتش به یک امتیاز معادل پیدا نکرده بود. او هنوز به اهمیت دستاورد خود پی نبرده بود ولی از کشف دنیای جدید صداها در پوست خود نمیگنجید. و طی نامه‌ای که به تولید کننده وسیلیه شنوایی نوشت، تجربه خود را مشتاقانه توصیف کرد. چیزی که در نامه بود، چیزی که در پشت کلمات بود، باعث شد شرکت او را به نیویورک دعوت کند. وقتی به آنجا رسید، او را تا کارخانه مشایعت کردند. زمانی که با سرمهندس ملاقات کرد، از دنیای تغییریافته خود به او گفت. در همان لحظه فکر، ایده و یا الهامی به ذهنش خطور کرد. این کشش فکری بود که مشکل او را به یک امتیاز تبدیل کرد. مشکلی که هم پول و هم خوشبختی را برای هزاران نفر در پی داشت. اصاره و جوهره آن کشش فکری این بود. به ذهنش رسید که اگر بتواند راهی پیدا کند که داستان دنیای تغییر یافته خود را به میلیون فرد ناشنوا که از این وسیری شنوایی استفاده نمی کنند، بگوید و آنها کمک می کند. او تصمیم گرفت بقیه زندگی خود را صرف خدمت مفید به افرادی که گوششان سنگین است بکند به مدت یک ماه کامل تحقیقات زیادی را به راه انداخت و در طول این مدت کل سیستم بازاریابی تولید کننده وسیله شنوایی را تحلیل کرد و راهها و ابزارهای ارتباطی با افراد گوش سنگین را در سراسر جهان فراهم آورد تا دنیای تغییر یافته خود را که تازه کشف کرده بود با آنها تقسیم کند وقتی این کار انجام شد، او بر اساس یافته های خود یک برنامه دو ساله تنظیم کرد. وقتی این برنامه را به شرکت داد، فوراً موقعیتی را در اختیارش گذاشتند تا رویای خود را عملی کنند. وقتی او شروع به کار کرد، کمتر می‌پنداشد که مقدر شده است او حاصل امید و آسایش عملی برای هزاران ناشنوایی باشد که بدون کمک او محکوم بودند تا آخر عمر کرلال باشند. اندکی بعد از اینکه با تولید کننده وسیله شنواییاش همکاری کرد از من دعوت کرد که در کلاسی که به وسیله شرکتش انجام می شود حضور یابم تا به افراد کرولال یاد بدهم که چطور بشنوند و حرف بزنند. من قبلا چنین شکلی از آموزش را ندیده بودم. بنابراین به آن کلاس رفتم و از اینکه وقتم کاملا تلف شود هم میترسیدم و از طرفی هم امیدوار بودم چنین نشود. در آنجا چیزی دیدم که در مورد اینکه چه کار باید بکنم تا میل به شنیدن طبیعی را در ذهن پسرم بیدار کنم و زنده نگه دارم، دیده خیلی بزرگی به من داد. هایی را دیدم که با کاربرد همین اصلی که من 20 سال پیش از آن استفاده کرده بودم تا پسرم را از کرولال بودن نجات دهم، واقعا یاد گرفته بودند بشنوند و حرف بزنند. بنابراین از غذای روزگار مقدر شده بود که پسرم به نام بلر و من به اصلاح کرولالی کسانی که هنوز متولد نشده اند کمک کنیم. چون تا آنجایی که می دانم ما تنها انسان های هستیم که این واقعیت را قطعا تثبیت کرده ایم که کرولالی را می توان اصلاح کرد و کسانی که از این مشکل رنج برند را می توان به زندگی طبیعی برگرداند. اگر این روش برای یک نفر جواب داده است، برای دیگران نیز جواب خواهد داد. شکی ندارم که اگر من و مادر بلر نتوانسته بودیم ذهن او را تغییر دهیم، او تا آخر عمرش کرولال می ماند. پزشکی که در زمان تولد پسرم حضور داشت، محرمانه به ما گفت که ممکن است بچه هرگز نشنود یا حرف نزند. چند هفته پیش، دکتر اروینگ ورهیس که در این حوزه متخصص مشهوری است، بلر را کاملا معاینه کرد. وقتی فهمید که پسرم حالا به خوبی میشنود و حرف میزند زند، شگفت زده شد و گفت، معاینهش نشان می دهد به لحاظ نظری بچه اصلا نباید قادر باشد بشنود. تصاویر اشعه ایکس نشان می دهد شکافی در کاسه سر وجود ندارد که گوش ها از آنجا به مغز وصل شوند. وقتی میل به اینکه که پسرم مثل یک انسان طبیعی بشنود و حرف بزند و زندگی کند را در ذهن پسرم کاشتم، تأثیر عجیبی با این کشش ایجاد شد که طبیعت را وادار کرد شکاف را پر کند و با وسیله‌ای که تیزترین متخصصان پزشکی قادر نبودند آن را تفسیر کنند شکاف سکوت بین مغز و دنیای بیرونی را پر کند فکر می‌کنم حتی فکر کردن به اینکه طبیعت چطور این کار را می‌کند بی‌احترامی است اگر نقش کوچکی را که در تجربه عجیبم ایفا کردم با دیگران در میان نگذاشته باشم کاری کردم نابخشودنی وظیفه دارم و البته به صورت اقلانی باور دارم که برای کسانی که با یک ایمان پایدار از میل حمایت می کند، هیچ چیز غیر ممکن نیست یک میل مشتاقانه قطعا راه های غیر مستقیمی برای تبدیل خود به یک مابعه فیزیکی دارد بلر به شنوایی طبیعی میل داشت و حالا شنوایی طبیعی را دارد. او با معلولیتی متولد شد که هر کس دیگری را که میل خود را خوب تعریف نکرده بود عقب نگه می‌داشت. این معلولیت حالا نقش و وسیله را ایفا می کند که او با آن به میلیون نفر آدم گوش سنگین خدمت مفید می کند و در ازای آن دستمزد کافی می گیرد تا بقیه زندگی خود را با آن بگذراند. وقتی او کوچک بود به او دروخهای مسلحتی گفتم تا او را وادار کنم که باور کند مشکلش یک نعمت بزرگ است. به راستی هیچ چیز درست یا غلطی نیست که باور به اضافه میل مشتاقانه نتواند آن را محقق کند. همه میتواند این خصوصیات را داشته باشند. در همه تجربی که در تعامل با مردان و زنانی که مشکلات دردی داشتند داشتم، هرگز با موردی برخورد نکردم که قدرت میل را به این اندازه دقیق نشان دهد. نویسندگان گاهی این اشتباه را می کنند که از موضوعاتی می نویسند که شناخت خیلی سطحی یا مقدماتی از آنها دارند. خوشبختانه من این امتیاز را داشتم که درستی قدرت میل را از طریق مشکل فرزند خودم بیازمایم. شاید خوب شد که چنین شد چون هیچکس به اندازه او آمادگی نداشت که نمونهی باشد از وقایی که در روند آزمایش میل صورت میگیرد. اگر طبیعت که آن را یک مادر می نامیم با قدرت میل در هم آمیزد آیا منطقی است که انسان های معمولی بتوانند یک میل مشتاقانه را شکست بدهند؟ آنچه عجیب و وصف ناپذیر است قدرت ذهن بشری است ما روشی را که ذهن به وسیله یان از هر وضعیتی فردی و موجودی به عنوان ابزاری برای تبدیل میل به همتای فیزیکی استفاده میکند درک نمیکنیم. شاید علم پرده از این راز بردارد. من میل به شنیدن و حرف زدن مثل دیگر انسانهای معمولی و طبیعی را در ذهن پسرم کاشتم. این میل حالا یک واقعیت شده است. من میل به تبدیل کردن بزرگترین معلولیت به بزرگترین امتیاز را در ذهن او کاشتم. این میل تحقق یافته. توصیف شگردی که این نتیجه شگرف به وسیله آن حاصل شده سخت نیست. این شگرد سه مرحله دارد. ابتدا ایمان را با میل به شنیدن طبیعی در هم آمیختم و آن را به پسرم منتقل کردم. دوم در طول چندین سال با تلاش مستمر و مداوم میلم را از هر طریقی که به ذهنم میرسید به او منتقل کردم. سوم او به من ایمان آورد و حرف مرا باور کرد. وقتی این فصل از کتاب داشت کامل می شد خبر مرگ شمان هانک رسید. یک پاراگراف کوچک که در گزارش خبری آمده بود نشان موفقیت شگفتانگیز این زن غیرمعمول در مقام یک خواننده بود. این پاراگراف را نقل قول می کنم چون چیزی نیست جز درباره ی میل. شمان هانک در اوایل کار خود به دیدار مدیر اپرای درباره وین رفت تا او صدایش را تست کند اما او تست نکرد بعد از اینکه مدیر نگاهی به آن دختر دست پاچه که لباسهای عالی به تن نداشت کرد با لحن نچندان بلند فریاد زد با چنین چهره‌ای و با توجه به اینکه اصلاً اصلا خصوصیت برجستهی نداری چطور میتونی انتظار داشته باشی که در اپرا موفق شی؟ فرزند خوب من از این کار دست بردار یه ماشین خیاطی بخر و با اون کار کن تو هرگز نمیتونی یه خاننده باشی هرگز زمان طولانی است. مدیر اپرای درباری ویین از تکنیک خوانندگی زیاد میدانست ولی از قدرت میل که میتواند به شکل یک دل مشغولی درآید زیاد نمیدانست. اگر او از این قدرت بیشتر میدانست این اشتباه را نمیکرد که بدون اینکه فرصتی به نبوغ بدهد آن را محکوم کند. چند سال پیش یکی از همکاران من بیمار شد. حال او به مرور زمان بدتر شد و نهایتا برای عمل جراحی به بیمارستان منتقل شد. درست قبل از اینکه وارد اتاق عمل شوم من به او نگاه کردم و از خود پرسیدم او چنین لاغر و نحیف و ضعیف شده است چطور میتواند از زیر این عمل اصلی با موفقیت بیرون بیاید پزشک به من هشدار داد که احتمال اینکه همکارم را دوباره زنده ببینم خیلی اندک است این نظر پزشک بود نظر بیمار نبود قبل از اینکه تخت او را به اتاق عمل ببرند با صدای نحیفی نجوا کرد خودت را ناراحت نکن رئیس چند روز دیگر از اینجا بیرون می آیم پرستار مراقب با ترحم به من نگاه کرد اما بیمار عمل جراحی را با سلامتی پشت سر گذاشت در پایان پزشک او گفت تنها چیزی که او را نجات داد میل او به زنده ماندن بود اگر او از اینکه احتمال مرگ خود را بپذیرد امتنان نکرده بود به هیچ وجه زنده نمیماند. من به قدرت میلی که به وسیله ایمان مورد حمایت قرار گیرد ایمان دارم چون دیدم که این قدرت مردان و زنان را از قر به اوج قدرت و ثروت می رساند دیدم که خیلی ها را از لب گور برمیگرداند دیدم که به عنوان ابزاری عمل می کند که فرد بعد از اینکه به صدها روش متفاوت شکست می خورد به وسیله یان دوباره موفق می شود دیدم که علا رقم که طبیعت پسرم را بدون گوش آفریده بود ولی این روش یک زندگی طبیعی شاد و موفق را برای او فراهم کرد. چطور میتوان قدرت میل را مهار کرد و از آن استفاده کرد؟ این فصل و فصل بعدی این کتاب به این سوال جواب دادند. این پیام در انتهای طولانی ترین و شاید مخرب ترین رکود اقتصادی که آمریکا تا به حال دیده است بر جهانیان ارسال خواهد شد. منطقی است که فرض را بر این بگذاریم که این پیام می‌تواند مورد توجه بسیاری از کسانی قرار گرفته باشد که از این رکود اقتصادی آسیب دیدند. ثروت خود را از دست دادند و کسانی که موقعیت خود را از دست دادند و خیلی های دیگر که برنامه‌های خود را باید دوباره تنظیم کنند و دوباره به میدان بیایند. امیدوارم این فکر را به همه اینها منتقل کنم که همه دستاوردها هر ماهیت یا هدفی داشته باشند. باید با یک میل شدید و مشتاقانه برای چیزی مشخص شروع شوند. طبیعت از طریق اصل عجیب و قدرتمند ترکیب ذهنی که هرگز کشف نکرده چیزی را در کشش میل قوی میریزد که کلمه ای را تحت عنوان غیر ممکن قبول ندارد و واقعیتی را تحت عنوان شکست نمیپذیرد